داستان ششم بابای معصومه امو غلام حسین گل بیار درم میارم اصا. سیگار نیمه پیچیدش را درون قوطی سیگار گذاشت درش را بست و در جیب گشاد شلوارش فرو کرد طبق گل را به دوش گرفت و به طرف پله چوبی که من کنارش ایستاده بودم آمد آرام با چهرهی که همیشه لعابی از خنده آنچین های و پرندوهش را پوشانده بود از پله ها بالا رفت. شکم را به نردش از و با یک تکان طبق گل را از روی دوش پایین آورد و روی سینه گرفت تا اوسای بنان را بگیرد. اوسو عزیز که تازه زنش مرده بود و سه تا بچه قد و نیم قد برایش جا گذاشته بود سوگوار آهی کشید. طبق گل را گرفت و خالی کرد. با کمچه گل را روی ردیف آجرها پهن کرد و گفت امو غلام حسین خیلی سفته. یک نوک بیل آب داخلش کن. باشه دوستا. با همان آرامش به سوی کومه گل برگشت و شیارش داد و آبش زد. در ته طبق خاک خشک پاشید. با تکه سنگی گلهای اطراف طبق را تراشید و پاک کرد. میل را میان کمه گل کاشت و دوباره قوطی سیگار را بیرون آورد. سیگار نیمه تمامش را پیچید و منتظر شد تا او سعزیز گل بخواهد. دور میدان شهرداری جایی که عملها و بنها و شاگرد بنها جمع می شدند با او آشنا شدم. کنارم نشسته بود. نان پیچش را بین دو پایش گذاشته بود و سیگار بین انگشتان لرزانش دود می کرد. پکی به سیگارش زد و رو کرد به من که گویی سالها دوست و آشنایش بودم و گفت چرا توی فکر ازی بسر مگر زن و بچه ات گرس نماندند؟ نه نه چیزی نیست ولی دو روز اینجا می نشینم و کسی سراغم نمی آید. آهی کشید و گفت آری خوب کارگر زیاد شده از دهات دور و بر می آیند. دنبال کار می گردند کار من هم همینطور شده. یک روز هست؟ یک روز نیست. پیرمردها را کم کمتر به کار می برند. تو هم که خیلی ضعیف و کوچک هستی. سپس ریش چند روزه جوگندمیش را خاراند و گفت. ازت پیداست که درس میخوانی ها؟ آری درس میخوانم. کلاس نه را تمام کردم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. من هم دو سه کلاس قدیمی خواندم. آری! شان ساوردم و اوسو عزیز با پیرهن سیاه و چهره غمزدهش آمد و هر دوی ما را از آنجا برداشت و با خود به محل کارش برد صبح زود می رفتم در خانه اوسو عزیز و توبرش را به دوش می گرفتم و با هم راه می افتادیم. وقتی به محل کار می رسیدیم امو غلام حسین خاکها را سرند کرده بود و از خاک حسچهی ساخته بود و با دو تا پیت آب می آورد که درون حسچه بریزد تا بخی سلام و علیک می کردیم و مشغول می شدیم یک نفر آجور تراش هم می آمد و گوشه حیات روی کومه تراشه ها و خاک آجرها مینشست و صدای چاک چاک بلند می شد. بعد یک مغنی هم با کارگرش می آمد که چاه بکند مغنی همیشه اخمو بود چرخ چوبی شکسته بسته بزرگشان را سوار می کردند و مغنی لخت می شد. کلنگ را از توبره بیرون می آورد و با شلواری که تا روی زانویش می رسید و پر از لکه های گل قرمز بود درون چاه می رفت و خاک هایی را که می کند با سطل بالا می فرستاد. کارگرش خلیل با کمک دست و پا چرخ را می و سطل را بالا می کشی. ساعت که به ده نزدیک میشد، چایفروش چای فروش دور با بساتش از راه میرسید. بوی چای تازه دمش را از دور میشنیدم. شنیدم. تراش، تیشه و سنگ پایش را به کناری می انداخت و می آمد. مغنی با سر و روی گلالود از چاه بیرون می آمد، دستش را میشست و آبی به سر و صورتش میزد و با همان صورت خیس و آبچکان کنار بسات چای مینشست. یک روز خلیل که همیشه با دیدن چایفروش دستپاچه میشد نزدیک بود سطل خاک را از بالا روی سر مغنی رها کند مغنی با رنگ پریده از چاه بیرون آمد و با خلیل دعوا کرد امو غلام حسین دور کومه گلش را خوب با بیل جمع و جور می کرد درست مثل کدبانویی که عزیزترین قاریهایش را جارو بزند اوسو عزیز انگشت های گلیش را با شلوار پاک می کرد و از پله چوبی پایین می‌آمد. همه دور بساط چای فروش می نشستیم. چای فروش با دستمال استکان و نلبکی ها را خشک کرد مغنی آهی کشید و گفت حسو عزیز راستی بچه هایت چه می کند؟ فکری برایشان کرده ای؟ آن یکی کچولو که شیر میخورد چه می کند؟ عزیز با پشت دست بینیش را مالید و در حالی که توی نلبکی پر چای فوت می کرد گفت چه فکری بکنم اجالتا یکی از همسایی ها که بچه شیری داره نگهداریش میکنه. آن جوان مرگ این بچه کچیکه را خیلی دوست می داشت خیلی تراش دستی به سرش که پر از خاکه آجر بود کشید و گفت سنگ و پای لنگ خدا رحمتش کند خواهرم باشد چه زن نجیبی مدتی که با هم همسایه بودیم هیچ کس صدایش را نشنید مغنی که آب از نوک بینیش توی نلبكی میافتاد گفت ای بابا عمر آدمی مثل چاهه آخرش به تهش میرسی فروش پرسید راستی اوس عزیز زن چه بلایی به سرش آمد مرضش چه بود اوس عزیز پشت گوشش را خاراند و گفت نمیدانم بالا بلای ناگهانی بود یک روز اتاق را دوده گرفته بود و بعد با بچه به حمام رفته بود. موقع برگشتن سرما خورد. تب و لرز کرد. میگفتند روده گرفته. حوث آبالو کرد. برایش خریدم و دنبال کار رفتم. شب که به خانه برگشتم. آری مرده بود. خلیل با کف دست محکم به پیشانی خود کوبید و نالید. آخ مادر من هم به همین درد مرد. خدا بیامرزدش نمیدانید چقدر دلش شامی کباب میخواست همیشه به من میگفت گفت پسر جان کاری پیدا کن تا یه غذای پرقوتی بخوریم آخر دست و هم می لرسد. اما قلام حسین اندوهگین گفت راستی که بچه بیمادر بزرگ کردن مصیبت بزرگیه نمیدانید دانید با چه بدبختی معصومه را بزرگ کردم. حالا دیگر از زیر دست و پا بیرون آمده. جرات نمیکردم از خودم دورش کنم. موهایش را کوتاه می کردم، لباس پسرانه به او می و با خود به حمامش می بردم. توی همین کاروانسرایی که الان زندگی می کنم، کنار سنگتراش ها پیرزنی بود که معصومه را به او سپرده بودم. پیرزن نان می جوید و در دهان معصومه می گذاشت. اینجور بزرگ شد. حالا هشت سال دارد. به مدرسه می رود و وقتی بیکار است نشیند توی اتاق و گیوه می بافد. کمک خرجی است همه چیز میگذرد. ولی خب آخر چرا باید زن تو جوان مرگ بشود زن من هم در جوانی مرد آن هم چه مرگی باران زیادی باریده بود دیوارهای کاروان سرا خیسیده و وارفته بود رفته بود برای معصومه لبو بخرد خب بله یک دیوار خیسیده گلی روی سرش خراب شد جسدش را به خانه برده بودند و دخترکم کم معصومه که تازه زبان باز کرده بود مدت حال لال شد خب، آری دیگر میگویند سرنوشته آدم خندهش میگیرد چرا سرنوشت فقط برای زن و بچه من اینطوری میخواهد؟ کی شنیده که تا به حال یک دیوار آجری روی سر کسی خراب بشود زمستان گذشته توی روزناما خاندم که یک خانواده ده نفری زیرا آوار مانده بودند نصفهای های شب کمه زیر کرسی خوابیده بودند، اتاق روی سرشان خراب شد. هیچ کس زنده نماند، باده هوا شدند و رفتند. پدر و مادر پیر پیرو، هشتا پسر و دختر ده ساله تا بیست و چند ساله. چای فروش پولش را گرفت و آهی کشید و با ای گرفته گفت، زندگی ما همین جوریه، مثل توفاله چاییه که دوباره آب رویش بریزند و به راه افتاد. خورشید مثل یک نلوکی پر از چای تازه دم توی سینی آبی آسمان مانده بود تا سرد شود و غروب به لب کوهای مغرب برسد امو غلام حسین هر وقت گلش حاضر بود به من کمک می کرد و خشت جلو دستم می گذاشت خشتها را نیمه می کرد تا آماده باشد و به دردسر نیفتم خارهای خشت نکه انگشتانم را زخم کرده بود و ناچار بودم برای پرتاب کردن خشت از مچهایم کمک بگیرم. هنگام نهار دور هم می و از هر دری سخن می گفتیم. به من می گفت نانپیچه را زیر خاک بگذارم تا برای ظهر نرم بماند. دستهایم را تماشا می و می گفت چه دستهای نازکی شبها وازلین را با موم داخل کن، بگذار تا داغ بشود و به دستهایت بمال تا پوستش گلوفت بشود. حنا هم خوب است. همه به او احترام می‌گذاشتند. آرام بود و بی شتاب با آن نگاه های عمیق و مهربان به بسیاری از سوالهایم جواب می‌داد. مطالعه می, می کرد و این را می توانستی از گفته هایش بفهمی. یک روز حادثه در خانه روبروی محل کار ما اتفاق افتاد. زنی سراسیمه از خانه بیرون پرید و فریاد زد بچم، بچم، مسلمانها به دادم برسید بچم، توی چاه زن دوباره درون خانه شتافت چند زن و کودک هم از خانه بیرون پریدند و کمک خواستند همه دویدیم و اموغلام حسین جلوتر از همه ما به سر چاه رسیده بود برخلاف همه که دست با چو شتاب زده بودند اموغلام حسین آرامشش را حفظ کرده بود مادر کودک که خود را به در و دیوار میکوبید و با مشت به صورت خود میزد ناگهان به طرف چاه دوید میخواست خود را به چاه بیاندازد. امو غلام حسین که خم شده بود تا به داخل چاه برود او را گرفت با لحنی مهربان او را دلداری داد و به او گفت که بچهش زنده است و خود به چاه سرازیر شد از بالا میدیدمش که پاهایش را درون سوراخ‌های دیواره چاه فرو می‌کرد و پایین می‌رفت. زمان چون بیمار لنگی کند و سنگین میگذشت. درون حیات فریاد بود و ناله و شیون. چند زن دور مادر بچه حلقه زده بودند و او که صورت خود را خون انداخته بود، نیمه بیهوش روی پای یکی از زنها ولو شده بود. همه چشم به چاه دوخته بودند. دور چاه حلقه زدیم. مادر بچه شتابان خود را به چاه رساند. اموغلام حسین کودک را که خیز ولی بیحال بود بیرون داد و با شادی فریاد زد. زنده است، زنده است، چاه خیلی آب نداشت. میخواستم بروم و دستهای مهربان و زبر و گلی اموغلام حسین را ببوسم. پوست دستش رفته بود و خونین بود. شلوارش تا زانو خیسیده بود. کودک را به اتاق بردند. در چهره مردم شادی و حق شناسی موج میزد در گوشه حیات گنجشکی بی خیال به جوجهش دانه میداد غروب از کار دست کشیدیم و با امو غلام حسین تا در خانهش رفتم. دستم را گرفت و به خانهش برد. اتاقی در گوشه کاروانسرای سنگ تراش ها. معصومه گوشه اتاق نشسته بود و شیشه چراغ لامپایی را پاک می کرد. کتاب و دفترش و گیوه نیمه بافتهای در کنارش بود نشستم امو غلام حسین از توی جعبهای مقداری شیرینی و کشمش بیرون آورد و در بشقابی ریخت و جلویم گذاشت هنگام نشستن از درد چهرش به هم آمد دستی به زانوهایش کشید و گفت آه دوباره زانوهایم درد گرفت هر وقت توی آب سرد می همینطور می شود معصومه چراغ را روشن کرد و من گفتم مادر پسرک چقدر خوشحال بود یا را دیدی؟ راستی چه حق بزرگی به گردنش داری؟ هیچ وقت از یادش نمیرود. رفت چند تا کشمش به دهان انداخت و گفت نه، یادش نمی رفت بیشتر مردم قدر شناسند اما اگر میبینی بعضی در مقابل خوبی دیگران بیتواوتند این مربوط به فهم و معرفت آنهاست ادهی نمی یا خودشان را به نفهمی می, می شاید هم نفعشان در این باشد که خودشان را از دیگران کنار بکشند نمیخواهند قبول کنند که توی این دنیای ما دیگران چگونه فداکاری می کنند و چه انسانهای شریفی پیدا می که جان خودشان را برای دیگران به خطر می چند وقت پیش توی همین شهر خودمان سه نفر زندگیشان را برای نجات یک چاهکن به باد دادند چاه دم داشت و چاهکن بیچاره از آن تحت و چار تنگ نفس شده بود فریاد زده بود که کسی نجاتش بدهد سه نفر رهگذر بدون آنکه بدانند آن کیست به نوبت داخل چاه شدند و مردند ماموران شهرداری آمدند و چهار جسد را از چاه بیرون کشیدند خود من امروز می دانستم که امکان مرک هست ولی خب یک کودک را نجات دادم که معلوم نیست در آینده چه بشود زندگی آینده مال اوست من دیگر پیر شدم، دیر یا زود میروم. بعضی از مردم اینطور نیستند. یک روز آقای فکل به میدان شهرداری آمد و مرا برد که یخچالشان را از تعمیرگاه به خانه ببرم. یخچال سنگین بود. وقتی میخواستم از پله بالا ببرمش زنگینیاش روی شکمم افتاد و دیگر ندانستم چه شد. سر از شیر و درآوردم. و معلوم شد که شکمم پاره شده است. از بیمارستان بیرون آمدم و سه ماه در خانه قاﺑیدم. بیکار. معصومه گیوه هایش را می بافت و پیرزن همسایه به بازار می برد و با پولش زندگی می کردیم. صاحب یخچال هم از من احوالی نپرسید. خب، آدمهای های بی بیمعرفت و خودخواه زیادند. خانه حاج کریم را دیدی؟ با آن روبنای مرمری سنگی یک تکه در کنار پله های طبقه بالا هست که رگی سفیدی دارد آن سنگ یک روز که کارش می‌گذاشتیم روی دستم افتاد انگشت شستم له شد و دو ماه و بال گردنم بود اما یک روز تابستان که از در خانهشان میگذاشتم از دادن یک لیوان آب به من دریغ کردند خیال می‌کردند گدا هستم یا کوفت دارم آری بگذارم این از زندگی ما هرکس کس دو دستی جیب خودش را چسبیده و گور پدر دیگران چرا؟ چون هیچ نمونه ای از دوستی و انسانیت در زندگیشان ندارند؟ معیارهای خوب و زیبوا انسانیت را ازشان گرفته و پنهان یا نابود کردند گاهی پیش خودم فکر میکنم که نکند از اینکه خوب و شریف باشند وحشت دارند چون در چنین جامعه هایی آدم های خوب همیشه دچار دردسر میشوند. شوند؟ روزنامه ها را به خانو ببین چه خبر است؟ از جعل و تقلب و دزدی و آدمکشی پر است. مردی با بیست دربه چاقو زن و دختر کوچکش را کشت. زنی با کمک معشوقش سر شوهر خود را برید. جوانی دختری را به یک محله بدنام فروخت. پسری مادرش را به قصد کشت کتک زد و چند تومان پولش را دزدید و فرار کرد. مردی آنقدر هروئین کشید تا مرد. راننده ای مردی را زیر گرفت و فرار کرد. شخصی از استخوان مرده روغن حیوانی میساخت. راننده ای آمبولانس در راه بیمارستان به بیمار تجاوز کرد. باز هم برایت بگویم؟ خب چه فکر میکنی؟ اینها چه کسانی هستند؟ اطرافت را اطرا تماشا کن؟ میتوانی آنها را ببینی اما هنوز اسمشان توی روزنامه نرفته. از هزار تا یکیشان به دام میفتند و دیگران همچنان به کارشان مشغولند. از بالا بگیر تا پایین. آن وقت من که اوقات بیکاریم را به خواندن کتاب و روزنامه می گذرانم چند بار به پر پایم پیچیدند زندگی مرا زیر و رو کردند بیا ببینم چه کاره ای برای کی جاسوسی میکنی ها <تصفيق> جاسوسی حتی میدانند که من چندتا کتاب توی زندگچم دارم شما جاسوسید یا من اما نمیدانند که فلان آقا چطور گندم و برنج یعنی غذای اصلی مردم را پنهان کرده تا گران بشود و بعد بفروشد یا آن دیگری چگونه صدها ها گونی سیب زمینی و پیاز در انبارش می مرا از کارخانه آرد بیرون کردند به جرم اخلالگری. جوانیم را با هممالی و در میان آرد تباه کردم. سینه بیمار شده بود و سرفه میکردم. خواستم معالجه کنند. جلوی صاحب کارخانه را گرفتم و حرف من شد. بیرونم کردند. همین. هیچ جای دیگری هم کار به من ندادند. چون صاحب کارخانه آدم بانفوزی بود و در بیشتر کارخانه ها و کارگاه های این شهر شریک بود یا مال خودش بود ناچار آمدم دور همان میدانی که تو نشسته بودی عملگی کردم اما شرافتم را از دست ندادم با خودم میگفتم آن بیچاره ها را ول کن بی خبرند چشم ها را بر تمام زشدی های بستند و از بام تا شام مثل گورکن به دنبال مردخوری هستند آن وقت زندگیشان را ندیده ای؟ آخ بسرم زنشان خانوادهشان، نمیدانی چه کسافت کاری هایی به ما میگویند عمله قاشق هزار خانه توی دهانمان رفته در هر خانهی که کار میکنیم چیز ای میبینیم از بنوبنچه دیگران خبر داریم توف به اینجور زندگی ها توف در اتاق باز شد زنی با چهره ی رنگ پریده سرش را داخل کرد و لرزان گفت، سلام بابای معصومه امروز پدر بچه ها مریض بود و سر سرکار نرفت، اگر داری دوتو من بده تا برای شب نان بخرم. امو غلام حسین بلند شد و زن را راه انداخت و دوباره کنارم نشست. همسایه ها او را بابای معصومه صدا می کردند. به او گفتم، راستی امو غلام حسین کتابهایت را ببینم. یک دست را به زمین تکیه داد و دست دیگرش را به زانو گرفت و برخاست. صندوق چوبی کهانه ای را که گوشه اتاق بود باز کرد همچنان که کتابها را یکی یکی به من نشان می داد گفت انسان به غذای روح احتیاج دارد همش که شکم نیست بعضی وقتها حس می کنم که ذهنم گرسنه و تشنه است آن وقت می کنار این کتابها چه دوستان خوبی چه بیآزار؟ کتابها پر هستند از سرنوشت عجیب و غریب آدمها، مبارزه مردم، ظلم و جور ستمگران، فداکاری انسان‌های خوب، درس‌های شرافت و انسانیت، واقعیات زندگی. این بشر مثل فنر می‌ماند، به زمینش میکوبند، باز بلند می‌شود و بلندتر از همیشه گردن میکشد پای صندوق نشست. دستی به صورتش کشید و با تعجب از من پرسید راستی شما در مدرسه چه می‌خوانید همش فرمول‌های به درد نخور همش حفظ کردن های شما هیچ وقت کتاب می‌خوانند راجع به کتاب با شما حرف میزنند؟ با خجلت و دستپاچگی گفتم آری خیلی کم بعضیاشون میخوانند، چند تا معلم خوب تا باحال داشته ایم بعضیا میگویند وقت نداریم با خودش زمزمه کرد وقت نداریم یعنی چه؟ یک معلم. معلمی کار مشکلی است: ما خانه میسازیم؟ آنها آدم می سازند. جوانها را می سازند. افسوس. توی این دنیا کار را جلو سگ میگذارند و استخان را پیش اسب. مسومه مشقهایش را نوشته بود و مشغول خالی کردن مقداری دوغ از قابلمه توی کاسه بود. دختره که کمرو و ساکتی بود. کم حرف میزد و همیشه سرش به یک سوخن بود سفر پهن بود و امو غلام حسین از من خواست که با آنها شام بخورم بعد از شام یکی از کتابهایش را به طور امانت به من داد تا بخوانم برای اولین بار با نام گرکی آشنا شدم از کاروانسرا که بیرون آمدم هوای دم کرده ی تابستان به چهره خستم خورد بوی نان تازه و بوی ماست و خیار و بوی عرق تن سنگ تراش ها در هوا بود سرم را بالا گرفتم نفسی کشیدم نفسی به وسعت تمام جهان و از کردم که آدم دیگری شدم یک ماه با او بودم و کار می کردم پس از آن هم به خانهش می رفتم. دوست شده بودیم گاه برایم دفتر صد برگی می خرید و به من می داد و می گفت بگیر شاید لازم داشته باشی و چون از گرفتنش خودداری میکردم آزرده می و می گفت، نه ترس صدقه نمی دهم. تو هم یک وقت تلافیش را در می آوری. دنیا که با آخر نرسیده اصلا به عنوان قرض به تو می دهم. بگیر چه فرق می کند؟ پسرم بچه نباش؟ روز به روز ضعیفتر می و سرفه می کرد پاهایش برام کرده بود اما خودش را به میدان شهرداری می رسند. سمستان فصل بیکاری بود. کار بنایی کساد شده بود. امو غلام حسین مقداری کبریت و کاغذ سیگار در سینی کهنه می گذاشت و می رفت بیرون. روبروی کاروانسرا گورستانی بود که شبهای جمعه مردم در آنجا جمع میشدند. شلوغ میشد و امو غلام حسین مقداری وسایر بازی هم برای بچه ها جلویش میگذاشت. میرفتم و کنارش مینشستم، مردم را تماشا میکردم بچههایی که با نگاه های آزمند بس با ها ظلمی میزدند و مادرانی که آنها را به زور به دنبال خود میکشیدند محسوم گاییم آنجا میآمد و جلوی آفتاب مینشست و گیوه میبافت شبها با هم به کاروانسرا میرفتیم معصومه که دیگر با من آشنا شده بود با همان هیا و سر خم شده قصه گنجشک کاغذی را برایم میگفت و بعد مشخول مشخهایش میشد. شام می و با هم حرف می زدیم. کتابی می گرفتم و به خانه هم می رفتم. چند روز بود که امو غلام حسین گوشه اتاق خوابیده بود و از اپاهایش بدتر می شد دیگر نمی توانست به میدان برود، اتاقش از همسایه ها پر می شد پینه دوزی برایش یک کوچک روغن می آورد که می روغن نهنگ است و برای پادرد خوب است و قال پشت کاروانسرا با مقداری اصل به دیدنش می آمد. یک هلبیساز ساز و یک رنگرز و دو نفر سنگ تراش هم به او سر می زدن. زنهایی که موقع بیپولی از او کمک می‌گرفتند، مرتب احوالش را می پرسیدند. اما غلام حسین با وجود بیماری با همه خوشوبش بش و برایشان حرف می‌زد. حالش که بهتر شد مدتی سراغش نرفتم با خیال راحت به درسهایم می رسیدم. دوباره سینی را برداشته بود و رفته بود کنار دکانهای پشت کاروان سرا آنجا مینشست و و چشمهایش را می‌بست. و در خود فرو می رفت. شب جمعه بود به طرف کاروان سرا می رفتم. گورستان شلوغ بود دور گردها برای آب کردن اجناسشان گلوی خود را پاره می کردند گداها صدقه می خواستند. چند نفر با صدای بلند برای مردها و عزادارها قرآن می خوندند. سقایی با آهنگی تریاکی آب سبیل می کرد نق می زدند، گریه می کردند و به دنبال مادرشان می دویدند. با چشمهای گرسنه، به لبوهای پخته، به بامیه که شهد ازشان می چکید، به خیار و به شیرینی‌های های مشکل گوشا خیره شده بودند و آب از گوشه دهانشان سرازیر شده بود از بابازی فروشی که فرفره و قارقارک می فروخت بی را به صدا درآورده بود دیگری کبوتری چوبی را که روی دو تا چرخ بال میزد در برابر چشم بچه ها تکان میداد و میگذشت. بچه خودش را روی زمین پهن کرده بود و خاک بر سر خودش میریخت و مادرش با مشت به گردهش می میکبید با هر ضربه صدای شبیه قارقارک از گلوی بچه بیرون میزد. دو تا پسر بچه دست بر دوش یکدیگر مثل ماشین بوغ می زدند و از میان مردم بیراژ میرفتند در میان آن هیاهو ناگهان یک کامیون شهرداری از دور پیدا شد ایستاد و چند نفر مرد قوی هیکل از آن پیاده شدند گداها هم همدیگر را خبر میکردند و میدویدند گدایی که میلنگید ناگهان پا در آورد و گریخت آنکه کور بود چشمهایش را باز کرد و در میان جمعیت گم شد. صدای خنده و فریاد به گوش می‌رسید. چند گدای مفلوک هم که یارای حرکت نداشتند، گیر افتادند. همه را توی کامیون انداختند. ناگهان در میان قوقا و هم همه مردم، دخترکی از سوز دل جیغی کشید و صدای آشنایی به گوشم رسید که داد می‌زد: من گدا نیستم، من گدا نیستم. مردم من هیچ وقت نکردم شتابان به سوی کامیون دویدم در میان انبوه گدایانی که در اون کامیون چپانده بودند امو غلام حسین را دیدم که خودش را به لبه اتاق عقب کامیون رسانده بود و دستهایش را به سوی مردم دراز کرده بود و فریاد میزد معصومه آخ معصومه را چه کنم سراپایم داغ شد مشتهایم را گره کردم و فریاد زدم بابای معصومه را دارن میبرند. بابای معصومه گدا نیست پینه دوز از دکانش بیرون پرید و فریاد زد بابای معصومه گدا نیست کجا میبریدش مردم بابای معصومه گدا نیست رنگرز و علبی‌ساس خودشان را به میان جمعیت انداختند مشت آبی رنگرز بر فراز جمعیت تکان میخورد و جلو میرفت نباید بگذاریم بابای معصومه را ببرند او گدا نیست سنگتراش ها بیرون دویدند، دکاندارها و دست فروشها به سوی کامیون که دود سیاهی از پشتش به حلق مردم میرفت و میخواست حرکت کند، حمله بردند. او گدا نیست، ولش کنید، بابای معصومه گدا نیست، پایینش بیاورید. برق یک مته سنگتراشی در هوا درخشید و صدای ترکیدن لاستیک کامیون به گوش رسید. مشتی به دهان یکی از مردان قویهی کلکو بیده شد، بابای معصومه را. پایین آوردند معصومه سینی و کبریت و سیگار و زنبیل و اسباب بازی را به دوش میکشید و به دنبال پدرش به خانه می رفت. در ته چشمان اشکالودش شادی جا باز می کرد و روی گناهای پرید رنگش دو قطره عشق بخار می شد چون گنجشک قصهش به سوی خانه کاغذیش می رفت سوز سردی در هوا بود و خورشید با دست و دلبازی آخرین تلاشش را می کرد تا گرمای بیشتری به جانها ببخشد نالی سوگناک یک از راه دور و غارغار چند کلاخ بر چناری بی برگ در کنار گوری بی به گوش می رسید بغز گلویم را می و از هیجان صورتم داغ شده بود به سوی کاروان سرا به راه افتاده